شما دوستان عزیز نواری در عمان را با دعای در ضایعه حضرت مانی سلام الله علیه و الله را قرار کار صوربا اون چیزی بود که این روز جمان با مسلطانه از مایرالی ایرانی باید اردنه فروت اردنه فروت داشته باشید. اشتا اللہ و روز سیستم آبان را که نظهر چهده مسمم ملتی ایران در رسیدان به حدقا به در مقابل دشمنان و دیل حادثه امانیست یک حادثه اشوییست اظر به توجه اسلام به مهمترین رکن تشکیل نظام اسلامي و جامعه اسلامی است عن مسئلۀ امامت و مسئلۀ ولایت و زنده نگهداشتن غدیر بیک معنا اسلام along اعتقاد قلبی و اقتصاد یک نهلی دینی و مذهلی به یک اصل اعتقادی بحث از شناخت مسئله بحث اسلام عادی ترین مسئله در خواب اسلامی و نظام اسلامی و دنیا اسلامی را در حسده ردیر متکلی شده است. هم دواریم ما به مناریت واقعی کلمه به دنبال نخموم و مزمون و نخنای حقیقی حقیقی ردیر ردیر ردیر ردیر باشید و در مورد مسئله سیزنه آبان که در عددیات نظام اسلامی ما قرآن موانسه با استکبار ما است. است. رو گرفته هست. حرفای گفتنی بسیار هست. مسئله مرده نیست که خاطر رو میخواییم زنده نگه بریم افتخار کنیم مزامینی در این مسئله وجود دارد خب شما می سیزده آبان حامل سه قابسه این تاریخی تدیب امام نفسار چهل کشدار دانش آموزان نوجوان نفسار پنجا و و سرانجام از خیر دانی دوستیت سال 58 در حدسه یک طرف ملت ایران است احساسات مردم است مذار مبارده یعنی بزرگوار است و مردم ایران یک نفت از یه هم قولت مستقبل آمریکا است یک نفت مبارده یعنی نظام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 دو نقطه اساسی در اینجا وجود دارد که مورد و درسی حرار می گیرد. که این مبارزه از کجا شروع شد و چه مراریدی رو تکرد و به کجا رسید. با بولون که نکلی این موارزه چی شد؟ به حرد دو روح، دو دسته، دو انسان لکه با هم موارزه می چی باشد یکی چی شد؟ چی کی چی در این مبارضه اتویانی در مورد شهار اول که از چی شد از قبل از سال شده یعنی از سال, سال سی با قدرتانی و دیسته که در و حکومت دفتر موسیقی رو سرم اینکر و بارزت اینجا شد رسمن مهموران آنگلکایی که اسم رسم و نام و خصوصیات مشخصه همه می به ایران با پر از و ارازه رو بعضی از سیاست مدران خود رو تطمیم کردن و طوبت های به ساره 32 رو در این جا دار حکومت مصدب را سرمیگون کردن جالبین از که حکومت مصدب که به نسلی ها شد. هیچ دونه با ها نداشت او در سایسترده بود. یاد آمکاری ها اعتماد کرده بود. امیدوار بود که آمکاری ها رو با آنها قربت اپنشتانه ای با آنها میکرد. شاید اصحار رو میکرد. با این دولت آمکاری ها رو مکار کردن. مدونه بود که یک که کاری باشه دوست دو بونه با اما من که استقبرای گزارش در هم دست شدن اون‌ها رو با جان اونجا کنسول اصلیه این دفتر اپراتر آمریکایی بود اسمش هم یادم نمیاد داشتم کاملا شده دارم که پول تا رو به سمت بشوندن و شام رو فرار کرده بود برگردون دن اینجا شدن همکاره یعنی زمان بیار رو در دست کردن تقریبا سال از این قضیه بازشت حادثه مردم در کروزه و فردا و اسلامی و مرزا تیسلامی و نهزت اسلامی پیش آمد. یعنی این ها ده سال خوش آمدن, کتک سردن، زندان کردن، اگام کردن، اکت خرخوستن، باید اشتر کردن، به حالی انسیجاری تر ده سال بعد از این روز بیرکتا بستن، ده سال چین و دو، تر فوق دار چین دو، اینجا هم طرف قضیه اگرچه که حکومت ظالم تا و حکومت پهیدی بود. اما پشت سر این حکومت آمریکایی ها برار روشتن. اونا بودن می کردن. و به در دیگر دیگر ما شده بودن. این مبارضه ادامه بده کرد تا سال چهر و سه شد آمریکایی ها بستقیمان. داخل مسائل بشند که ما رو بزرگوار در سال چه دوستی تبیید کردن. اینجا هم به ظاهر و توانستند که خودشان رو پسیدن شدن. یعنی پیش ببرند رو به خیان خودشان مخلوب کنند. اما رو بعد از سال چه دوستی که اومد محمد بزای پهلوی در کشور هزاران فاید آفرید به پشتیبانی آمیکایی ها آمیکایی ها همه حقی توانستن به دو دوارت و چپاقل و توصیح قلبی و تجاوز در ایران ادامه دادن یه کافزا مستشار شدن ایران بردن، فردن، پون گرفتند شکنجه تردن دادند بزاران گناهیت در ایران کردن به لفت سال پندر و شش و سال و حد این به ایران شروع شد و لفتی امام بزرگوار این مبارزه دیگه مبارزهی ای این وقته که امید پیروزی برای دشمن رو دید دشته باشد استاد شدا کرد نردانش، زنانش، حتی درانشان موزانش. در این برای ما پشتشونم آنستان محالمت کرد به افصار افتر 257 ملیت ایران کلیوز شد. یعنی به این مبارزه ای رویانی افصار افتر تا سار افتر 517 اپنی مدتی بیشت در مبارزه به چون ااب اسلامی تیروس شد حکومت مبتی با آ فاسکرگان شد حکومت کاشاویدانی مدت و حکووممت ملت می حکومت از آمریکای در کارها مرکز اشلا و مرکز همه ی ها هم همون دانه جاسوسی یعنی سفارت در که بود ارتباط بگیرن، تحبید کنن،, کنن، قرار مدار بگیرن که رو بفتشون جزد کنن ولی نیشاید به کاری انجام بدم لیکن در سیزگه آربان سال فن دو دانشجوها هرمان زبده ترین گشه مبارز ملت ایران حرکت هستی برانی رو انجام دادن یک بار دیگر امریکا در قوته آهای قوت در مقابل ملتی ایران شکست بود سلسله شکست های امریکا پیدا بیره کرد در طول این سال یعنی از سال 57 تا این روز که سال زمان آمریکا به طور دعایم در حال اخلال کردن است در این شکست سال 57 را دوران بکنه به طور این. این شکست شکست آمریکا فقط در ایران نبود که بگیم رژیم وابسته امریکا در ایران قبل وقت ها رو کردن. دستی که این شکست آمریکا در منطقه بود. این روز این شکست رو مردم می بینن. با حوادث شمال آفریقا حوادث این منطقه از این عربی نفرک که مثل امریکا همه کسی نمی و از آهاد مردم رو بدینه اما تولیسیان های سیاسی آمریکایی می که این انطلاب اگر بماند اگر می شه اگر با رو و چشیگیری نشان به این موادس پیشتاند آمد. با هرچی در تمام داشتن، امیلیم تا دا این روز. حالا بعد از این مدت مبارزه شده در این میدان. خیلی مهمی نیست. یک مبارزه ای از سال سی و دو، سال نوید هستیم. یعنی در طور مبورد شست سال یک موانزه بین ایران از یک و دولت مستقر آنفیکا از یک در آفتاده این چیزی چی نیست ای خیلی چی, چی این تا امروز این وقتی انسان بفهمد که در اینجا اون که پیروش شده است اراده و تصمیم آتیه یک ملت همراه با ایمان و توقعی به خدا است این رو ما فهم این درسی می شود برای همه ی ملت ها این یک اصلی می شود برای همه ی تحبولات تاریخی فلسفه جدید تاریخ قبطنیه در وجود اسلامی با نگاه کردن به این حادثه به بار می نشیند تبدیلی می شود مورد قبول همه برار واقعیت اتفاق است یعنی ملیتی ایران در تمام این مدت و تا امروز پیروز این میدان عظیمه به جدلیه به طرف ایران نگاه کنید، دلیلش این است که ایران میخواستند انقلاب را از دین ببرند، انقلاب موند. انقلاب نفقط موند، بلکه روز به روز طبیتر شد. این نسل جوان ما که در زمان انقلاب نبوده است، در دوره جنگ تحمیلی نبوده است، امام را نگیده است، با همون انگیزه، با همون عظم و درس درست می کار می کند، می‌کنه، می کند، نفس می که جوان دوران انقلاب با اون عظم و انقلاب رو به وجود آورد. اینها نشانه های بارز زنده بودن انقلاب است. علاقه در همه اینها نظام اسلامی رو مرایزه کنید. ازام اسلامی استحکامه بگرد میشه چه دوانی از خودش رو منتقل به دنیا در ملتها رو در مقابل ازمت خود وادار به ازام به اعتراف کرد خود رو در چشم ملتهای مسلمان و غیر مسلمان بزرگ کرد امام بزرگوار ما در چشم دشمنان خود حتی یک چخصیت عظیم به آلی رتبه است. ملت ایران ارمانی، ملت تولادی، یک ملت مقامل، یک ملت مؤمن، یک ملت مبسیرات در دنیا محرمتی شده است. و در کشور نظام اسلامی دوانستی کشور متحولی کنه. ایرانی کشورت الگوز رو می بینید. ایران نوران قبل از نیست. ایران دوران قبل از یک کشور عقب مونده بود، یک کشور فراموش شده بود، یک ملت بی بود. با این همه استعداد، با این همه موالیس تاریخی، با این فرنگ دنی. این ملت هیچ برود و برودی نه در علم دنیا داشت، نه در سحنه سیازت دنیا داشت، نه در صحنه فناوری فر... دنیا داشت نه حرف نوعی برای دنیا داشت نه کاری در زمینه مسائل منطقه مسائل دنیا داشت تابع محز بود در داخل کشور به جزء یک مناطق محدودی که مورد توجه مسئولان رژیم و سردمداران رژیم بود و که یه مناسب کشتر دوچار قیوانی دوچار نهاباندانی امروز از یک دوشه کشور، یه خبر نابسان همان میرسه همه احساس میشن امروز اقلد نقاط کشور، اونجوری بود نابسان همان بود مطمئن زندگی نداشتن آت نداشتن برد نداشتن جاده نداشتن از های زندگی برکاردار نبودن با حسرت اونایی که می دانستن با بسیاری هم نمی دانستن چه خبر اصلا در نهیتر زندگی می کردن دیان این روز اون پیشنطهاد اون کارها این اپتکارهاد اون بروز ها در میدان علم و سازندگی و حضور قدید در همه وقتشاق این حرفا اون نوان وجود نداشت کشمت پیشنسته این پیروزیست انقلاق زنده نظام روز به روز باردرتر و ریچه شد. ملت روز به روز آبادیش بیشتر شد. اون مقداری که شما امروز روز، شما جوانهای دویرستانی و نوجوانهای دوران تحصیل از مسائل دنیا میفهمید، سر دنیا میشه تحلیل میکنید. اون روز خیلی از روشن فکرهای این مقدار رو میفهمیدن. این مدوار شما قابل فهم نبوده بود. بسیرت بس و آقایی و تحریل سیاسی و آقا به در مصاحب در پیشتر همگانی جده. پیشرفتیم ما. در زمین مالی پیشرفتیم، در زمین محنوی پیشرفتیم. ای این توجهات محنوی، این حضور در اصفای محنوی دعای عرفه بمینیدنیم. هفته یه گودشته چه خبر بودن در سخت تا سر بودن دو دو همه جوان ایام یه جور محمدان یه جور ایام محلم یه جور عذاداری جور شادی یه جور ترسای این اون ای ای مذهب اون ارسای سیازت و مسیرت بر برغم دشمن از همه رفته آباد شد که و حکومت فردی عادت کرده بود حکومت عادت کرده بود یکی از بهترین مردم ها در این کشور روشت حضور انتخابات، در حضور مسائل عمومی و مطارکت های اونمومی این این این همون انقلاب است که امریکایی نباشه میخواستن نابود بشه میخواستن زریف بشه به خودشون برمین میدادن تا چند های دیگه از من خواهد برست به این نوکره های مستبد منطقه ایشون هی بیمه خوشی میدادن که تا چند اخطیقه سه بکنید انقلاب از منی نابود میشه اون دور رو به همه الله کرده این میگه این طرف است اون طرف غذیه بیره دستن. دولت مستقبل امریکاست. هیچ کس نیست در دنیا که شک داشته باشد در این که امریکا در این سی سال بیش از سی رتبه از آز اقتدار رو به جهانی ثبوت کرد. همه این رو می دینن و می خود امریکایی ها هم به همین اقرارو می کنن. همین سیاست مداران، به عنوان متقاضی اول حقوقی دولت فراهمیو دولت مردان و باید دولت مردان و دولت زنان خیلی رو دیه من مسخره می کنم که شما آمریکا را از خونده رسون می کنید روس آمریکا حکومت کرده امروز هیچ دولت در آمریکا در دنیا یک دولتی در دنیا به نظر دولت آمریکا منفور نیست <سه> زندگی ما و دولتهای دیگر جرأت کنند یک روزی رو روز به عنوان روز و نفرت از دولت آمزکا معایین کنند تو مردم بگن در روز بیر راه پیمایی کنید راه در اتفاق ما توانو، سکرون من که را می‌توهد. می‌متا حتی باب سوکته برمانوی ها یکی باب دانم می‌کنم کنم کنید من دیگه داشته باشه. آمی‌کایی آمی‌کایی آمی‌کاکنم ما یک حسوری داریم. اونو باید کنم از دامی با تروریست خالفیم این با تیرونیست ها کم تیرمان در من تیرم آوه در بسیار بزاده دو میدان. با تیرونیست ها میدان که ایدان که بران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 دنیا و همکته با همه مدید کنن امایت کنن این همو دارن نیدن این طبیقه پوشیده نیست شبوت دولتی مدلیست از تپرکار در ازار بیشترین حمایت و بیشترین طورت و به که از دموکراسی دوشی رو بردن، این آمید. زیر اطلاعون رو تدارم درامی در این ها مدادت سال است. شهست و است که حقوق ملیت فدستین داره به طور علمی آشکار رزیلی بی آرها بخلی مطفای سردونیزی در فدستین اشتادی همانی نمی‌کند. اگر اخلاق نمی‌کند، اگر موقعیت نمی‌کند، موقعیت نمی‌کند. به که در اطراف میلادی اتفاق می‌افتد، ازدواجی که آنی است. ازدواجی که منی بودم و که سرعت من که دنیا و دولت چه دنیا اگر به چهارم و چهارم تو دنیا کنید که می‌دانیم یک این از این بدتر را انجام ندهیم، نیست. اتفاقی می‌افتد؟ اگر این کار را انجام ندهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر این کار را انجام ندهیم، چه اتفاقی دستا به زیرگانی های آنها به زیرگانی های اکیشتر از بندگا به جنگید شنگیش کرد. داری خانمودیشی داری برو بازید، سطران اون و اپنی اپنی درزید. ادعا که ملتش و ملت سنت رازیست، این خود را های آفریکا خود را کردن، ممراه کردن، تو شما می‌خواهید این مراکش دادن رو این سریعی دودت که نارزده های نیرستن در, در مبارزات و مبارزات انتقاباتی جوری که به سریعی ریستان رو شاد کنن نوکر از اونها رو اثبات کنن اینکه شما این حالا که می‌شاییم که آن مشترکانی که دوباره یا خود فلسطینیان، دوباره سعی می‌شوند سرگردان را یا می‌توانیم سرگردان را که با تو این که هر را را دوباره، می‌خواهیم آن را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 that I'm a couple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 Ho scoperto che mi sta tentando di far credere che sia una frode, ma non lo vedo. سرایی کنیم بکنیم بسرحیم یک بگیریم بسرحیم از بس در رو دعای اما باید دعای میتنید حتی دعایتی اسلامی را پیدا را بدار کنیم درست کنیم که بخیی ملکی آزه و مسمم استر و لحول ملک حول که حریف ندارد سلاح حریف ندارد شاید که این مطالعه نشده یا می‌توانست مطالعه یک سرگرمی خاطره، نکه با بودها وقتی یا استاد معلم از دانویی دوست به خدای بزرگ باور می کند ایستاد ای اکیه ای ای در این در مضور تقیل مبارده سیکس تقیل مبارده این این تمام شده تماما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 اگر مشکل را اگر دوستانتان را به خاطر اینکه که او را وقتی که او که را که که ملت را اکت کنم برمان سرگرم مفاید حدیر همه ملت یکی از کارای di tutta la nostra برای پیشرفت تیشتر های که چیز نوی تلاشتر همه باید همه به همه پارتر به چو فار می شود که می شود که تلاشتر که بزیقت یکی از راه حال داده مهده بهده ایت را هم 僕も投資とかってまずくて交渉もあったら毎日交渉で終わってるんだから困られてるんだ。忙しく فراحات را به مردم نکشوند چیزهای جوزیدی را بای جمعیان و حیامون و استفاده همیغاقی دوستان و خورت که را بایی بیزان و تیمیزینایی میخواندن مهم این است که همه این ما بدنیم و اشکالیتی امروز دشمن به خاطر حوادث شمال آفریبا و حاصل به خاطر پیشتک ایران پیشتک ایلیی ها را اونا بیدن پیشتک هست که یاد این دوم بگر به خاطر این به خاطر تحسیلی ایران برونی نلتی یک بزشته هست که بیداری که بیداری دشتک مداره جسری که امکاری ها می و دولت سلام که می می می کنند معافل سیاسی دنیا می دونم از که چه خبر که این همه دسته تشکر دو خوبنا به گنبال این همین یکی از کارای ماهی محورا که با وردشای موزیانه و موزیانه بین ما افتراب ندارون این دو دو کارای را بیریموند اون کارا کارشناس خامل این کار این I'm mm going -hmm. no, to touch you and you. Don't Det kan nog ställa att det är ett projekt motare för en halv. Man vet inte vad det är på botten. Det kan vara på ett annat projekt precis میتردی برگیمان دیری و که